فصل هفدهم. th عیسی به شاگردان خود فرمود از روبرو شدن با وسوسه ها گریزی نیست اما وای به حال آن است که سبب وسوسه می شود برای او بهتر است که با سنگ آسیابی به دور گردن خود به دریا انداخته شود تا یکی از این کوچکان را منحرف کند. مواظب باشید اگر برادرت به تو بدی کند او را متنبه ساز و اگر توبه کند او را ببخش. حتی اگر روزی هفت بار به تو بدی کند و هفت بار پیش تو بیاید و بگوید توبه کردم، باید او را ببخشی. رسولان به ایسای خداوند عرض کردند: ایمان ما را زیاد کن. خداوند پاسخ داد اگر شما به اندازه دانه خردلی ایمان می داشتید، می توانستید به این درخت توت بگویید از ریشه در بیا و در دریا کاشته شو و از شما اطاعت می کرد. فرض کنید یکی از شما غلامی دارد که شخ می زند یا از گوسفندان پاسداری می کند. وقتی از مذهب برگردد آیا او به آن غلام خواهد گفت فورا بیا و بنشین؟ آیا به عوض آن نخواهد گفت؟ شام مرا حاضر کن، چمرت را ببند و تا من میخورم و مینوشم خدمت کن، بعد میتوانی غذای خودت را بخوری. و آیا او از آن غلام به خاطر آنکه دستوراتش را اجرا کرده است ممنون خواهد بود؟ در مورد شما هم همینطور هست. هرگاه تمام دستورهایی را که به شما داده شده بهجا آورید، بگویید ما غلامانی بیش نیستیم، فقط وظیفه خود را انجام داده این عیسی در سفر خود به سوی اورشلیم از مرز بین سامره و جلیل میگذشت. هنگام که می‌خواست به دهکده‌ای وارد شود، با ده نفر جزامی روبرو شد. آنان دور ایستادند و فریاد کردند: «ای عیسی، ای استاد، به ما رحم کن.» وقتی عیسی آنان را دید فرمود: بروید و خود را به کاهنان نشان بدهید و همچنان که می پاک گشتن یکی از ایشان وقتی دید شفا یافته است در حالی که خدا را با صدای بلند هم می گفت بازگشت و خود را پیش پاهای عیسی انداخت و از او سپاس گذاری کرد این شخص یک سامری بود عیسی در این خصوص فرمود مگر هر ده نفر پاک نشدند، پس آن نه نفر دیگر کجا هستند؟ آیا غیر از این بیگانه کسی نبود که برگردد و خدا را هم گوید؟ با آن مر فرمود، بلند شو و برو، ایمانت را شفا داده هست. فریسیان از او سوال کردند که پادشاهی خدا کی خواهد آمد؟ ایسا در جواب فرمود، پادشاهی خدا طوری نمیآید که بتوان آن را مشاهده کرد و کسی نخواهد گفت که آن در اینجا یا در آنجاست. چون در حقیقت پادشاه خدا در میان خود شماست به شاگردان فرمود زمانی خواهد آمد که شما آرزوی دیدن یکی از روزهای پسر انسان را خواهید داشت اما آندا نخواهید دید به شما خواهند گفت که به اینجا یا آنجا نگاه کنید شما به دنبال آنان نروید زیرا پسر انسان در روز خود مانند برق که از این سر آسمان تا آن سر آسمان میدرخشد خواهد بود. اما لازم است که او اول متحمل رنج های بسیار گردد و از طرف مردم این روزگار رد شود. زمان پسر انسان مانند روزگار نو خواهد بود. مردم تا روزی که نوح وارد کشتی شد و سیل آمده همه را نابود کرد، می‌خوردند و می‌نوشیدند، زن می‌گرفتند و شوهر می‌کردند. همچنین مانند زمان لود خواهد بود که مردم می‌خوردند و می‌نوشیدند و به خرید و فروش و کشت و کار و خانه‌سازی مشغول بودند. اما در روزی که لود از صدوم صد بیرون آمد، آتش و گوگرد از آسمان بارید و همه را از بین برد. روزی که پسر انسان ظهور کند، مانند آن روزگار خواهد بود. در آن روز، مردی که در پشت بام است و دارایش در خانه می باشد، نباید برای بردن آنها پایین بیاید. همچنین کسی که در مزرعه است، نباید برگردد. زن لوت را به یاد داشته باشید. هر که برای نجات جان خود بخوشد، آن را از دست می دهد. و هر که جان خود را نسار کند، آن را نجات خواهد داد. بدانید که در آن شب از دو نفر که در یک بستر هستند، یکی را میبرند و دیگری را میگذارند. از دو زن که با هم دستاس میکنن، یکی را میبرند و دیگری را میگذارند. از دو مرد که در مزرعه باشند، یکی برداشته میشود و دیگری در جای خود میماند، وقتی آنها این را شنیدن پرسیدن کجا ای خداوند او فرمود هر جا ای باشد لاشخورها جمع می شوند.